پاداش سکوت نویسنده فرهاد توحیدی با نگاهی به قصه من قاتل پسرتان هستم نوشته احمد دهقان. مازیار میری بازیگران پرویز پرستویی، اکبر منافی جعفر والی حاجی ابراهیمی پدر یحیا آتلاب سیانی محمد سلیمی پریوش نظریه مهری همسر کمال اطاعت محتاب کرامتی همسر ساجدی سردبیر مجله فرهاد اصلانی، عبدالله مشکاتی، رضا کیانیان، حاج احمد ایروانی، آهنگساز حیمان یزدانیان محسن علی اکبری. و آنان که در راه خدا کشته شدند خدا هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند و آنها را البته به راه سعادت هدایت کند و امورشان را اصلاح فرماده ایسخای اوتوبوس مسافرهای منتظر و باجه فروش بلید همه سر جای خودشون زیر نور لطیف آفتاب که به وسیله شاخوبرگای درختار و آسفالت خیابون را پرنقش کرده چهارتو بلید بگیم همشه بلید بودتاستم از شیشه باجه بلیت فروشی هر روز داستانای تلخ و شیرین زیادی رو میشه رسد کرد خودش جای چند تا کتاب و فیلم سرگرم کننده است البته بستگی به حال احوالات فروشندم داره یه عالم آلم نو کنه رو پیشخون و کنارش کاسه روی کج و مهوچ پرستگی با چا دیگه ایتنا هفته آقا 3 یا نبیلید منا بی ساقو سوزا بیلید بعضی وقتا مشتریای بلیط فروشی به زحمت دستشون رو تو دریچه میرسونن و صورت که هیچ سرشون هم دیده نمیشه بعضی وقتا مادرها از همین خرید ساده بلیت اتوبوس خرید کردن و به یاد میدن شغلی خوشحالن که هر وقت روز و شب که بیان بلیط فروش تو باجه هست و اونا بی بلیط نمیمونن اما واقعا کار سختیه تو این شهر دود و دم اونم جایی که اتوبوسا دقیقه به دقیقه با ایست و راه افتادنشون کلی دود اضافی میفرستن تو هوا از جاش جمع نخوره و منتظر بمونه تا آخرین اتوبوسم بیاد و بره اون و خیالش راحت چه که میتونه بره خونه و استراحت کنه بالاخره وقتش رسید. تمام سکار رو با یه کاغذ می تو کاسه و دریچه آهنی رو می بنده و پشت بندشم دیگه صبرش نیست پله به پله و آروم بیاد تو خونه. حقم داره. از بس تمام روز دود و سر و صدا خورده که میخواد فورا پناه ببره به سکوت خونه. خونه تاریک تاریکه. تاریکه. درم که قفلی. وقتی میاد تو اول لامپ رو روشن میکنه بعدم کلید و میندازه تو تاقچه کوچیک چوبی تو کنج اتصال دیوار به سوتون. با وجودی که موهای سراریشش تقریبا همش سفیدن اما سرحاله و راست قامد. اما در و دیوارهای خونه زیاد سرحال نیستن. رنگشون که سرد و آبی و گله به گلم گچ زیر رنگ و بعد از اینکه کتش رو به جالباسی آویزون میکنه و کفشو در میاره، فورا میره سر روشویی جلوی آینه که دقیقا درش کنار در ورودی خونه است. دستاشو که میشوره و میاد بیرون نونو پارچه پیش قبلمه غذای ظهرش رو برمیدار و میبره آشپزخونه. قابلمه رو میذاره روی یخچال و نه و تو جانونی. وضعیت دیواره آشپزخونه مخصوصا اطراف آب کن بدتر از دیوار نزدیکی در خون است سر یخشال باز میکنه و یه لیبان آب میریزه و یه قلوب میخوره و لیبان به دست میره سراغ تلویزیون مدر زمان قرعه کشیه اون کسی که از آنجان میگه لیبان آبو میذاره رو میزه کوچیکی کنار تخت فلزیش که درست روبروی تلویزیونه از قطعی قرصش قرصی رو میدازه تو دهنش و لیوانو سر میکشه در عالم راضی هست که به های خون لیوان خالی رو میبره تو زرفشوی و کتری برنجی رو پر از آب میکنه تا بذاره روگاز رومیزی دو شله که رو اون یکی شلهش قوری استیل روی شله پخش کنه راهی جهرین نهرم می آمد چی چای خوشبو بر می داره و میاد یه پیمونه تو قوری بریزه که نوای تلویزیون توجهشو جلب می کنه باید بال <متحن> <متحن> بوتی چای رو همونجا میذاره با عبروهای به هم نزدیک شده یک راست میاد سمت تلویزیون جلوی تلویزیون خوشکش میزنه تصویر رزمنده چفیه به گردن نشون داده میشه که خیلی خوشحاله دمه بیا اما فقط دا نیجا شو کنی که ما دستخاله اینجا بیرون نریم چشهای مرد میلرزن و نمناک میشن و پاهاش از چشماش بدتر به یه مرتبه میفته تو مبل کهنه و قدیمیش انگار آوار چند صد ساله رو, رو سرش ریختن ای پیل که یه چشمش می پره و نفسش به سختی از توسینش بالا میاد دستش می لرزن از جوش بلند میشه و را میره تو خونه یه وجه بیش. دوباره میشینه میره سمت تختش اما نه به در خونه مثل تنها مفر نگاه میکنه و میره سمتش زبونه در رو میکشه اما نه برمیگرده رو تختش و دراز میکشه بدون اینکه لباسه سرتاسر سر سیاهش رو عوض کنه حتی بلند نمیشه لامپ وسط خونه رو خاموش کنه که چشاشو میزنه دستشو میذاره رو چشماشو و پیشونیش کلاف هست قرار نداره دستشو از رو چشماش بر میداره و تسلیم نور میشه شا میبنده یک آب از دو طرف تختش میشه و به سرعت رو بدنشو میگیره که یکو وحشت زده و قافل که چشاشو باز میکنه. حتی فرصت فکر کردن که هیچ فرصت هیچ دست و پا زدنی هم نداره. آبطوری رو صورتش میگیره که خبابایی هوا به سختی روی آب میان. پلیور کلوفت زمستونش از آب سنگین شده و دستاش به سختی حرکت میکنن. زیر آب کنار ساه های لرزوم چهره همون که تو تلویزیون دیده بود به سمتش برمیگرده و نگاش میکنه. مستقیم و خیره. اون یک با حیرت به اطرافش نگاه میکنه تازه خیالش راحت شده که اون خواب بوده و اون تو بیداریه هیرونه و باید یه طور این فضا رو بشکنه الله رب العالمين. و بهترین راه رو انتخاب میکنه. مالکی مالکی الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم اهمالکی اومین اهمالکی اومین الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم منکی یوم الدین منکی یوم الدین منکی یوم الدین اللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم منکی یوم الدین منکی یوم الدین در آن فرو میریزه و به سجده میافته تو جا نمازش سر به مار باز روز از نا روزی از نو هنوز خیابون کاملا از نور آفتاب مستفیظ نشده گورگو میشه که اون رسیده به باجه بلید فروشیش تو اسکا رو صندلی مردی کارتون خواب پهلو دراز کشیده جلوی صورتشم هم آتیش داخل پیته علپی خاموش شده و فقط دود ناچیزی از داخل اون زبونه میکشه میره تو باجه بلید فروشی میشینه اما دریچه رو باز نمیکنه همچنان سر به زیر و تو فکره به رو نگاه میکنه اما انگار هیچی نمیبینه جز اون تصاویری که تو ذهنش مدام میان و میرن خری گلوزی حاشیه بیرقم مشکی محرمو بیفته وقت می‌دوزه و پیش میره. دستیه تابلو فلزی شناسای کوچه رو میذاره رو پارچه ی دنسوزان. تابلو کوچه شهید سید یحیی ابراهیمی. پیرمرد اینکی که پشت چرخ نشسته زل زده به تابلو و آروم سرشو بالا میاره تا پی که این پیغامو ببینه. اوفسته بود. دستش شباشق کار میکنه. یشاپ یه رو دیدیم آخرشو امش زنی زد گفت تا با کردن تموم شد چطور میگی؟ حاجی بریت فروش قراره. حاجی چی؟ آن نمیتونه حرفشو چشم تو چشم حاجی بزنه اینه که روشو برمیکرد حاجی یهیارو یهیارو چی؟ میره رو بر روی قاب‌خس یاهیا که رو دیوار مغاز اسپای می‌سد. یاهیا رو خواب دیدم. خواب سعادتت. میدونی چند وقت قریبی میکنه با خواب من؟ از دوستشی. دیگه نمیتونه جلوی عشقشو بگیره. آیتی. یاهیا من آجی یهیا شهید نشه من کشتمش قطر قطر عشقاش مثل خودش بی قرار ریزن رو گونش اشتباه آمدید یهیای من آجی رو... بگم من کشتم آخه تو کی هستی که یهیای من کشته باشی؟ دو تا عکس یهیا و همرزمهاش بالای خواب عکس این منم اکبر مرافی ازانی از مسجد همین محل اینجا چی نوشته؟ شهید سید یا ابراهیمی پسر من بیس سال پیش تو جنگ شهید شده از قرار خودتم که اونجا بودی آجی تابلور خطات نمشته آخه اون که اونجا نبوده بودی. رفقات که بودن همه دیدن همه شنیدن همه گفتن آجی من کشدمش من قصاصم کن لا اله تو رو به هر وقت خاک پسر جان من یه خود فکر کن عقلت به کار بنداز آخه تو چرا باز یا رو کشته باشی آه چرا نمیدونم خب خدا روش رو که باز میدین نمیدونم حاجی من پسر تو کشتم چرا نمیخوای بفهمی؟ پیرمرد اینکی ریزنرش ترسید از این حجوم من خلاصم کن تو به صاحب این بیرخ من خلاصم کن یه کار بهتری میکنیم بی بیریم پیش محمد سلیم. ماما سلیمی ماما سلیمی دیگه رفیق تو عکسش اونجا هست اکبر میه سنت و عکسا و خوب چشم چرخونه روشون با چشمه ورم کرده سر میگرده نستم تا باشه اگه اون میگه قبوله قبوله بسم الله. تو <تصفيق> اتوبان <تصفيق> شلوغ و پار رفت آمد حاجی و اکبر مسافره یه موشینن اکبر و دستای لرزون یه قرص از قوطی قرصش در میاره و بدون به سختی قرتش میده همچنان بی و حاجی چشم ازش بر و مبغوته. همچنان تیقه دستگاه کارگاه تراشکاری میچرخه و محمد سلیمی که عینک قاب بزرگی رو صورتشه اکبر منافی مبهوت و می و تو آغوش می باید ببندید به این لام از سب دو دور تراشید بده زنی منگاتو بگیره بشه همون اکبره هم گیره همه رخته قیافشون توفیر میکنه مامد آقا اصفی کاری اینجاست که از فرق کنه داخه حاجی این اکبر آقا همچین برای ما گرفته معلومه که توشم تراش میخواد زورت میاد دوتا ماچ بدی؟ اکبر با بحت میاد و ببوسه یک او محمد به صافه میفته <تصفيق> ببخشید ااکبر جون مشینی که تو هم ما بودی؟ هنوزشم با تیم چی خال کرد عکس <تصفيق> که من از خودم اختن... در نی بر در پدر جا؟ اکبر آقا؟ تو ما رو یادش نمیمد میگفت فقط من و یهیه تو جبه بودیم تو هم منکر ما شدی اکبر پدر سالواتی ما که چیزی نخواستیم تا این چرخه میچرخه هیچی نمیخوایم محمد آقا امروز نمیدونم بعد چند سال اجبر آقا آمده پیش من میگه یهیه پسری تو شهید نشده کشتم چی؟ منم گفتم باشه میان پیش شما اگه شما شهادت دادین که آره باشه قبول <تصفح> <تصفح> خوش انصاف بعد بیس سال آمدی سراغ ما شهادت دروغ بگیری آقا بریم بپرده نغازه یعنی بگیر یه یک کارمون نشدی محمد دست اکبرو میگیره و میبردش اون طرف کارم اگر گوشت به لزونی که چی؟ این حرفا چی از خودت در میاری؟ بگیرشی بقی کی میگه یهیارو تو پشتی؟ بینی و, و تو نبودی جنازهشم با آب برفته بود مگه تو جنازه رو نکشیدی صاحب خودم بالای سرت بودن خودم دوتا تو نو از کشیدم بیرون وقتی افتادی رو زمین انگار هزار سال بود که بادشت همون کرده بودی بی حال بی <تصحنت> <تصحنت> بعدش بچه های امداد حاجی بردنش که بردنش دیگه هیچ که ازت خبر نداشت جوس عبدالله مشکاتی که اونم میگفتون حالت خرابه عبدالله <تصفح> منو یادت رفته عبدالله چی؟ اون که شب و صبح تو سنگر کفرتو درمی آورد هاچی آخرشم میرفت بیرون میخوابید اون که میگفتی نیشه اقرب و تکش صدام صد هزار بار از زبونش بهتره یادت اومد فقط یه چیزی یادم میاد خب الهندالله چی یه یه رو من محمد بیگفتی فقط به بلند شدن و رفتن اکبر نگاه میکنه شب شده و محل سوتو کره. حاجی ابراهیمی همچنان پشت چرخ نشسته و یه بیرق نیمه تمام جلوشه اما چشاش زل زدن به ناکجا و تو فکره ای وای سوزان چرخ راف داده اما حاجی همچنان توی دنیای دیگه است. خداقانه بلای سر دستش نیانده آجی آروم میره سراغ تابلوی کچه شهید سید یهیا ابراهیمی منطقه دوازده شهرداری تهران اونو بر میداره و با انگوشتا و انگوشتر عقیقش دست میکشه روی تابلو و چشمای پیر مرد نمناک میشه نه اگه میخواست بلای سر خودش بیاره که نمیامد پیش شما با هزار بدبختی تونستم از بچه های محل آدرس سر رو پیدا کنم اگه تلفن یا نشونی آسایشگاهشو داشتم همون دیروز خبرشون مون بیام به دادش رو برسن بدبختی می کنم از خودشم پرسید. دیشب زنگ زدن به عبدالله مشکاتی اون می که اکبر کجا بستری بوده پس پیداش کردی ها؟ نه گوشیشو واگذار کرده کسی نیست شباره تلفنشو بدونه؟ آدرس کارخونه عبدالله رو ولدم البته حدودشو وای به رحم ای اثر بکشونن اونجا با عبدالله بریم نشاوشگاه میگاد محمد میگاد همین جاست در شد یمرد کاغذ نشونی به دست از ماشین محمد پیاده میشه محمد هم از تو آینه ای ماشین حواشو داره پیرامر فورا خودش رو به باجه میرسونه اما باجه خالیه حاجی دستش رو میذاره بالای عینکش رو داخل باجه رو خوب نگاه میکنه محمد منتظره و حاجی سوار میشه سر کارشم نایی میزه خونه اکبر سوت و کور با یه آلم پنجاره کوچیک که نزدیک سقفه و به حیات خونه باز میشن یه نفر روی دو پاش میشینه و به شیشوار چند تا ضربه میزنه یکو اکبر از روی تک موبل کهنه خونش انگار که از خواب پریده باشه بلند میشه و راست میشینه به پشت سرش سر میگردونه. تازه متوجه صدای شیشه شده بلند میشه و میره پنجره رو باز میگو زنده ای. اکبر پنجره رو میبنده حالا همه سوار ماشین ما میریم که بیر. نه میریم پی رفیقتون آقای مشکاتی خونه بچه که ازش میگذری چی بگه نفسی میگشه و تو خودش فرو میره نه اگه فقط یک نفر مثلا همین مشکاتی شهادت بده که یهیایی من تو کشتی خداونده خدا خودم تنابه دارم می دزم کرداریت اکبه خیلی به زینش فشار میاره تا بالاخره صورت خیص عبدالله و چفیه یادش می آره آمانده از که از سهران برون شده سیروز؟ روز نه بابا خالگر افغانی سفر از انگوشتای دستشونشون نشون میده الکی ور می‌گرد مهندس خدا اله است از اینجا تا سحر سیر و کشیده حالا کود تو کربلا من دو کابینه پشت ماشین محمد نگه می‌داره کربلا مرا چه خبره اینجا آقا بهتره چیزها رو جمع کنه گفتم اونا رو همرو جمع کنم نگران اونم نباش مرد و پسر افغانی میرن تو کابین و این سه نفر میمونن بیرون مگر تو مشکاپو نمی‌شناسی یا داره من دیر کنم کلمو میکنه شما ماشین رو تا آره برداره رو واکومینم دود باش دیرم شد. محمد آروم نشینت رکب اونچی که یلغه اکبرن نشونه. گدا بهش رو تو ماشین. من واقش نشه کی. کجا بر آقا. مگه نگفتیم اشکات شهادت بده تمومه. ما رو واقش نشه شادی. تو فکر اون چی هست کی دود افت میزنه؟ امرا سر مرد این نگاه متعجب به سرطاپای اکبر میندازه و چیزی نمیکن اما کم هم دلخور نیست حاجی دستمال از جیب کتش در میاره که توش یه کم کش کشمشی یه خدا بخور تعدده تو بگیری دست درده ما اکبر مدام دلشوره داره باید چی نمیخواه که بر بگردی؟ نگران خونه زمگیتی کدو خونه زندگی بعد یهیو و مادر خدا بیامازش اون خونه دیگه به لعنت خدا نمیارسه. نمیارزه بچه هم کرفتم به کارشون منم هم همیشه همونجا تو مغازم چه فرق میکنه سر به کار خودم همین که یه لفه. چه خوب بود؟, بود؟ جلسه خوبی بود حالا یه چیزهی میگه کی به اون گوش میکنه ما کار خودمانه آقا جام به این خالقی بکنه مطل نکنه آبانه و گوشه شکسته سفر بعد با همین اکبر با برد به مرد و همراهاش سنوزده عبدالله عبدالله اخماش میده تو همون با تحجب به اکبر نزدیک میشه شما تشریف بریم اکبر خودتی؟ دمت گم تو این رو چه مکنی؟ من یادت میاد استخبار <صفح> الله حرفای میزنی حالا یه خود پیر شدی؟ یه خوردم همچی بفهمی نفهمی چاخ شدی ولی همون سمون اکبر خودمانی به جان عزیز تا دو سال پیش خبرت داشتم کی ملخص شدی راستی بابا چطوره بنده خدا چقدر حرسته میخود هم میشه بود اون شده شما آخه نال الله حاجی معرفی نکردی بله یه احیاس, داری احیاس. داری احیاس. داری احیاس. داری احیاس. خدا بیا امورزتش عجب بچه نازنینی بود خدا بیا امورزتش ها جی شهید امورزیده است حالا شما کجا اینجا کجا آقای مهندس بله الان میام بابا عجب بلیمان نمیکنن کنن ها تو هر شهری میریم همین بساطه میگم ببرن تا مهمان سرا اونجا شب میام اون فصل با هم حرف زنیم. حله عبدالله من زیاد رو نمیگیرم بعدش شهادت میخوام شهادت الو الو باشین باشه قفار جان این منو ببر سرا زود برگرد صدات نمیاد یه جواب یسا سرا با میزای پر و گارسنیکی که مشغول چیدن میز برای مهموناست اکبر حاجی سر میز کوچیکی نشست سلام یام فاکشنو با سلام و نعیم خواهیم جاکفر آقا امشب با امشابش نمی نسواهم می هواش کنم آقا چاکریم کردیم آقا شرم دنیا قربان واقعی بی دنیا پس گوشی اینجا چیست؟ پس هف؟ این هففشی سوفی مسلمان بفرم آبادل دستشوینداد خدرو دوشه احیی بر آنومبر آن بفرم آقای جام بفرم آقا بفرم بیا جام آقا شرم دنیا معتنص شدیم به خدا گرچه تاری آقای جام بفرم بفرم خدای بسم الله بفرم آخه بفرم آنچه چه خبر اکبر جان صافه چه میکنی آجان ببخشیدام معتاد شدیم آیه مالیس بیخود بله. بی خود همراه شو بگی من خودم محفظ دام راستی از چیزی گفتی چی گفتی تو شلو پلوگی اکبر آیه مالیس خودشونم ببخشید علو ببخشید ببخش. ببخش. علو سلام عبدالله سر میز بلند میشو و میره اون سلام. طرف در عیبال کلاف هست بله شما خوبی خیلی خیلی ممنون. تقبلات آجی جان حاجی جان انا رو باقی خودا همینجا سامل کردم حاجی چی فرموده بودی؟ اکبر هی دستاشو تو هم قفل میکنه و دلشوره شد تو دستاش پینهون میکنه فوق فوقش سه روز آقا جم میخوایم بریم کربلا داریم ناسلامتی حاجی به خدا بی ببینی نه نه نه نمیشه عزیزم من ایجوری که شما میگی ما سال دیگه هم به قصد ششیدی نمیرسیم چه؟ آه اون... اون... اون که مشکلی نداره آقا اون کار خودمانه حلش می‌کنیم تمام میشه میره آقا جان سه روزا التماس خداحافظ ده روز هتل کجا بودیم راس شگاه مهندس اج شهروند آقا خودتون با ایشون صحبت بکنی امضا میکنه چرا میگه ترکه مناقصاش تصدیق نشد نشده که نشد بهش بگو آقا بالادستی تو امضا کرده دیگه تو چی میگی همه اینا رو بهش گفتم آقا خب چه گفت میگه مکتوب بنویسیم قبوله تعجبا برو بهش بگو اگه امشب امضا کرد،, کرد نکرد فردا صبح از ادارش کوچیشه میگیرم امضاش بیرون ها برو همینجوری بهش میگیا خودت خلاقیت بخاطر نری حاجی جان میاد بفرمایید <تصفح> ای بابا قف با بس دیگه آشفه میدون سمت در که عبداله میگیردش اکبر آقا اکبر خدا بست عبدالله بست چیه اکبر به هم ریختی بس. این بده خدا این همه راه ها اومده که فقط یک کلمه از تو بپرسی یک کلمه آره یا نه آره یا نه چی مثل چی میدانم قضیه چیه اکبر جان تو که میدانی ما برای وکیلش تاره خورد نمکنم ولی تو حسابت سواست تو عزیز هور بودی گیره اگه گیر نداشت چی نمیمه پیش شما؟ ده همین حاجی جان تمام رفی رفقه وقتی میان سراغ من که کارشان گیره گیره چقدر؟ عبدالله فکرش به همه جا جو میره جوز مجارای یهیو خکر خکر جان عزیزت من نه من قلبم زیفه یادید رو به قبله شدم بگو بگو مرد ساوی آمدی پیش عبدالله مشکاتی مشکل گشه همین دیروز ساجدیه که یادته یادته بابا مجله خاکریزه در می آورد یه چندباری برد آوردم آسایشگاه هنچه زار یورو تلفنی تلفونی حواله کردم چه میخوای من چیزی نمیخوام فقط یه خواب میخوام یه خواب آروم یه کاری که راحت بتونم میخوامم میتونی؟ آخر آتی کردیم نه من قتل کردم چی؟ قتل؟ کی کجا؟ 20 سال پیش میگن تو هم بابا بودی حتما دیدی چشمای اکبر آروم نمیگیرن اشکاش که خود داره ها بگو بگی تو بابا نبودی بشه بگو من قاتل آقای میشه کردی خیال میکنه یحیای من اون کشته مزخرف میگی این پرتا چیه؟ یحیای بند خدا رو بسیا کشتم همه میدانم من خودم دیدم یعنی همه دیدم رو خط میشم گفتم آجی جان بچهت شاید شد حالا خدا بیام مرزتش تو رو خدا راستشو بگو من دارم دیگوله میشم من که میدونم یه رو کشتم به خدای احد واحد مگه پام به تهران نرسه یه بابایی از اون دکتر بی همه چیز در بیارم آسایشگاه روسرش خراب میکنم همین همینجوری بنده خدا رو نصف نیمه معالجه نشده ول کردن به امان خدا حالا تحویل بگیرن. آقای مهندس اینجوری نیست اکبر حالش خوبه خیال کرده که نه خیال نیست به خدای عهد باید خیال نیست یه یه تو جلسش منه من درام میبینمش اصلا آقا جان تو راست میگی یا رو تو کشتی خیلی خوب تعریف کن بایدون چطور این کار کردی ما اومدیم که تو بگی من که درست یادم نمیاد هرچی فکر میکنم یادم نمیاد ولی من مطمئن پاسپورت داری اشکال نداره خودم جورش میکنم ویزای عراقت میگیرم میبرم زیارت آقا ما حسین تا شپات نگیرم از زری بازده میکنم دیگه چی میخوای؟ جان من بگو <تصفيق> عبدالله تو واقعا بی سال پیش جزء شای هور بودی؟ باید به وارتنم کو. عطولا حالا آروم گرفته و میره حور میره تو خودش. اکبر همه جا خصوصا موقعی که آبی به سر و صورتش میزنه میره زیر آب و دست و پا میزنه. از یک کوچه قدیمی و باریک با خونه های قدیمی تر رد میشه تا میرسه به انتهای اون و از انگه خونه ای رو میزنه سلام آمزی سلام چی شده کلید خونه اوازو نمیخوام چی میخوای از این خونه شما ها چشمه دنبال اون چهار تا تیکه فرشو غالی چه ساره کی تیرت کرده نکن مثل مجید نقشه کشیدی به قرآن من مرده باشم بذارم شما اون عرس میراسو بالا بکشین من نمیذارم نمیذارم کوره بابای عرس میراس وقتی من بابای تو اون خونه نباشه عرس میراس بسیار درد من میخواره من هیچی مخونه رو نمیخوام برد خیرت و پرده خودمو میخوام زن نگاهش از خجالت میدوزه به زمین یه خونه مخروبه با در و دیوار ریخته و شیشای شکسته تو حوض وسط حیات بزرگ خونه پر از برگ خشکه درختا سبزند. سبزن اما انگار سالهای ساله که این برگ ها اینجا اکبر میره تو زیر زمین یه آلم خیرت و پرت. چند جابجا رو جا میکنه تا اینکه یک چمدون کهنه رو میکشه بیرون. تو چمدون دون لباسای جبهش و پلاکش قمقمش، تسبیح و او، مجله های خاکریز اونام چند شمارهش روی جلده یکی از اونا یه اکس چاب شده که حدود 20 تا رزمنده میخندن و دوتا انگوشت دستاشونم گرفتن بالا یا جلوی اونا نشسته کنارشم اکبره بعد محمد سلیمی، اومرترم عبدالله اشاره اکبر رو چند تا صورت دیگه مکس میکنه اکبر چفیش رو از زیر مجله ها بیرون میاره و با دست لرزه صورتش رو تو چفیش فرو میبره همونجا سرجش میشینه روی کارتون رو هق هق میزنه. زن از رسولت رو با گوشه چادرش رو پاک میکنه اکبر وقتی نگاه به صورت خواهرش میکنه که عشقش بند نمیاد با صورتش رو تو چفیه پنهون میکنه و حق حق میزنه موسیقی با رو فرم دلیبیت چی مثل خودت آورتی؟ شدید که نمیدونه دردت چیه باید سبحانه عجی ابراهیمی داره نماز میخونه و اکبر تکیه داده به ستون مسجد و پشت سرش نشسته هر دو تنهای تا والله شدن لا الله داره با یه مهر بازی میکنه و یکی از مجله های خاکریس جلوش بازه که عکس نامفهومی داره که زیر عکس نوشته شده برادر احمد ایروانی و طور که مهر رو تو دستش میچرخونه یکای احساس میکنه از دستش داره آب میچه که رو فرش مسجد زیر دستش دایره کچی که خیص شده و مشتش رو که باز میکنه مهر خیص خیسه نمازت تو نخوندی؟ اما به خودش که میاد باز مهر رو خوشک میبینه میفرمان نمون بود حاجه احمد ایروانی حاجه اینکش رو که واضح تر یادم تو نرسول یه یه بیدنش مجلی حبستا جدیه همونی که عبدالله گفت اونم یادمه و حتی جامده پیدا کنیم اون دیگه همیشه میدونه تو دستوردار نیستی حاجی اصلا نگه رضایت بدم چه حاجی تو به من قول دادی باید سر قولت وایسی حاج ابراهیمی پیش چشمای هیرون و لرزون اکبر کم میاره سلام علیکم آقا سلام ببخشید ما با آجرمد ها آقای ایروانی کار داشتیم چیکاره هستم؟ الان چیکاره هستش الان چی کاره آقا الان نمیدونم ولی تو جنگ فرمانده من بود عرض کردم الان چیکاره است؟ تو مسئول اطلاعاتی من میگم چیکاره است؟ من باید بدونم اینجا خدمت میکنو یا نه از این مستوسکی چی جلو؟ این مربوط به پرسنل خودمونه لطفاً بفرمایید کسی رو که میخواید اینجا نیست اینجا نیست که ای تو خبر نداری آقا من خبر ندارم اینجا کسی هست که جنگ دیده باشه؟ فرابون اسم ما رو بفرست پیشم کارچنسایی داری؟ کارچنسایی میخوای؟ الان نشونت میدم هم اینجاست بالای ای سینما اکمه شروع میکنه به باز کردن این دکماهی پیرهنش که حاجی جلوشون میگیره با با با حالا که اینطور شد اون قدیج رو میشینم تا را آمدی اکمه آرومش بابا این خاری نیست که حاجی جم من تا حاج عمد رو نمیدم از این چند شما نمیخوام خیلی پس دیگه من حساب نکن فمیدی اکمه مبهوت قدم های مردی که از در خارج میشه محوه خونه و چایای های فورین شیشه قرصش در میاره و فورا یکی از اونا رو بدون آب قورت میده باجی سرش پایینه و چای تو نلبکش رو میکشه از سمان من دلخوره معلومه که دلخوره بس خاطر این که علف یا بس خاطر یه یه بخاطر از سر نداشتی باید سما جامد ببینم مرد مومن خواه جامد شاید بیس سال جرات نشه کارش عوض شدی؟ ممکنه بازنشسته شده باشه؟ پس چه جوری پیدا کن؟ آسی چی گشت رو مجل رو خانم منشی جوونی داره با تلفن حرف میزن. ساعتا با مشکی؟ باشال ثبت؟ نه خوش تنها اومده؟ یک وقت ندده. ها جوک برم رو برش فسههره. چرا کوشی؟ باز که شما اینجا باستاین؟ رئیستون گفتن. مگه اینجا اداره است که رئیس داشته باشه. اومدی با ما شو کار دارین؟ بله بله بله. تو چی می‌رسین؟ نه نه من رفته عکس بگیرم. تشنه دارن؟ باز منشی شروع کنه به حرف زدن با تلفن که در اتاق پشت سر اکبر خبر به خود بهشون گفتم خودشون وایسادن. زه زه سلام، کاش اومدین. مرسی. خوب هستی؟ خیلی ممنون. اصلا باشه. چرا همین سر یا نبودیم اتاق من؟ راحت بنام همینجا نشسته بودم تا شما کارتون تمام بیام چه خبر؟ سلامتی شما خوبی؟ همه چی خوبه. همه چی خوبه، مرسی. چه کورنر می‌زنن تو نمی‌کشه چه؟ الان که دارم همه کورنراها رو اضافه می‌شم ولی یه جای توب روز جایی تو پروسه سرم نمیادیم اینجا چه جایی که یارگیری می‌کنن نمی‌شه انجام. پنالتی وارم، حمارو خودت بزن. حمارو چه الانم ندارم، مثلا هر پنالتی میرم ببینم چی میشه. یه چند جلسه فیزیوتراپی کنم. مراقبه خودتون باشه. عکس خوب بندازین. زن اینا کهشو برمی داره و یه نگاه سرسری به حاج اکبر می‌ندازه. پس یاد چه استفاده کردین؟ استفاده. برای دو خاطر آگاهی که نبات شش ما جواب پس بدیم. ما واسه استفاده اینا دیدیم. ما واسه آساجی دیدی گذاشتیم. نیستا. خارج از کشورم. پس درسته ما. اینجا مزال اختیزه. اینا که در دیوار نمینیه. اینجا جوان است. این نشونی ما اینجا هست یا نه؟ زن لیوان به دست رو میفته سمت طبقه بالا و این دو تام دنبالش. من فقط می‌خوام بدونم این عباس ساجدی هم عباس ساجدی که ما متوجه بودیم چه کجاست آقای جون می‌بینی که گرفتارم بفهمی بیرم به میخانه برای منم اون شب واجب تره که بدونم این عباس ساجدی هم, عباس ساجدی, هم عباس ساجدی که ما دومولش نکردیم آخه اون نشیگه رفقای ما رو داره خودش هم از رفقای قدیمی ما بودن حرفایقش ساجدی تشریف آوردن از خودشون بپرس یه قرص ویتامین C تو لیوان میچوشه چرا صورت میاد تو کلام حرف بزنی مگه ما پول خواستیم که دل درد اون می‌کنی مگه کار خاصی که در اخبار تخمی کنی؟ مگه هست پدری طلب داری؟ آره کلاف دارم. یه ساعت وقت من گرفتی؟ باشه دیگه برو بیرون. ها خیلی خیلی باعث خودت می‌فهمی زنگی پشت میز نشست و نفسش بند اومده تو دلش خالی میشه. آقا ساختار! علخم. ببینم ببین چه بهشون شش زان رو به پنج میکنه. این بزرگی میتوی تو چشش. نگندی قابلیت ندخ. این چارتا کردن که بیشتر نمی زمه پر خود. نگداریشو میخ. اینا چارت زنگاش رو یا حرمت. دیگه دارم مو از تو جای نمدار نگردشم. رسی بریم. اینو نمیخوام تا آخر ساعت جابرمی چارت جابمرمم ها بس. آ اینا این پرونده شما برادر مامان پرونده نمیخوام دنبال نشونی فرمانده من هم ها جمعه ایروانی من شما چهازه به چه ها رهیمی و ساجده اینا نیسن. آره خودشه نشونی ایروانی بله تمام به چه ها آدلس و نشونی و تل... شماره تلفونش همه نیجی دره تشرفتشترشون نمسیب چهاشه اینا بینید این نشونه محمدی و فلا برین که ستایی شدفتی ها شاییش این نشونه بازقالهی ای. بدونی چی درکبوز بره همزده والا این کمال اطاعت تو محمد سلیمی البته اگه زنده باشه چطور؟ مگه نمیتونی شیمیایی شده بود آخر بار که دیدمش اینقدر زرز کشیده بود خدا مدن این عبدالله مشکات اینو پیداش کرده اینم آدرس و تلفون خودتان این احمد ای بابا. عجب شانس دنشم نه تلفونش هست نه اصلا حسنا پیداش کنم؟ باهم نمیدونم آخر برک ما دیدمش دو بود سه ماه هم بعد جنگ وسط ما شروع بشه <تصفيق> نشد باز حاجی و بر را میافتن از دریه ساختمون عظیم چندین طبقه میرن داخل بهتری بگم ساختمون سر به فلک کشیده عریض و طویل خانم منشی و سرویس موبل چرمی آره اطباک با چربای شیکی هم بود ولی بابر کنم مره بود جلو بهش میگفتم خیلی بیشوری الو سلام علیکم حاجقا از دفتای دکتر باز مزاحم این میشم خسته نباشید میخواستم به طلاب برم باقی دکتر این هفته درست ساعت جلسه مصحبی مطباتی دارن اگه ساعت جلسه هر جا به جا کنید ممنون میشم بله؟ بله اطلاع میدید التماس دواماید باشید چی میگفتم آره حرفش حرفوزی ندارم لحظه بوشی الو مرجان جا یه لحظه بوش سلام علیکم چلست گوشی خدمتتون الو مرجان نگی ما کنسل کردم ها مرجان جان پوشخطی دارم ها الو سلام علیکم به شدی بفهمید خواهش میکنم نه خیلقی آقای تا داشتید ندارن بلی دانشکده هستن نه نمیان بلی خواهش میکنم یادش میکنم همه دفتر کمیسوری عالی سازمان ملل برگوشی خواهش میکنم روز خوشی داشته باشید خدا حافظ شما سلام علیکم ببخشید محتر شدید چند از گوشی خدمتون ببخشید چند بار بهتون میگم آقای دوثیر نمیاد؟ امروز نمیاد. فردا چی؟ بگید فردا کی میاد بله؟ اشتباه گرفتی؟ اینجا نظم خاص خودشو داره عرض کردم خدمتتون بفرمایید از کجا تشریف بودیم امرتون چیه اسم شریفتون چیه یاداش میذارم تو کارتابل آقای دکتر هر جوابی دادن بیدم خدمتون از جای تشریف نهی بردیم امریم نداریم اون جواد بازقالهیتون بگیم اکبر منافی از بچه های هور با پدر یا ابراهیمی اومده بودن دنبال نشونی نشانی فرماندشون. آجه همه دیدوانی همین من مینویسم بلی قول نمیدم بتونم وقت ملاقات بدم مگه اینکه خودشون دست بدم. بدن خب میگفته منشی دفتر و گوشیشو بر میداره و نگاه متعجبی میره تو اتاق جناب. دوست گوشی گوشی گوشی گوشی اکبر میره سمت در و حاجی پشت سرش آمد. که تا منشی میاد تلفنشو برداره اونان پا برداره هلو ساری هلو ساری اینکه قضیه یه نشانیه شب بتونم یادداشت یه یاد بگیرم در آسانسور که بسته میشه انگار اکبر اینه خود زیر آب که نفسش بند میامد هوا کم میاره تا سانسور از طبقه هفته برسه یکی یکی بیاد پایین، اکبر هم نفسش به شماره می طوری که یک هم می موجی از آب دورشو گرفته و انقریبه که غرق بشه اکبر از بحت دیدن این همه آب حتی نمیتونه دهنشو ببنده با دهان باز ولی بیفریاد میره زیر آب رگوار گلوله روی آب میشینه. شینه توی آب موجی ایجاد میکنه. و آدمی که آروم زیر آب میره. نهی تو شیبه یه ملی قدیمی بالا شهر که از کنارش جوی آبی میگذره بله کیه منزل آقای کمال اطاعت بسرمید تشکیداره شما حالا اکبر میره زنگ از رفقهاشونم اکبر رو به زمین نیدست سلام زنی رو به میان سالی مبهود خیره شده به اکبر چقدر پیف شدی اکبر آقا زن استکانهای چای رو کنار بشقابای میوه رو میز میزاره برای من که بهترین سفر عمرم همون سفر مشهد بود حاجی مشغول دیدن چند تا عکسه حالا خوبه این چند تا عکس ازش باقی مونده خیلی خوشگذشت نه حالا نمیدونم مال این بود که همهتون بعد از سه چهار ما اومده بودیل مرخصی یا هم خوب بودن یادش بخیر چه قیمه خوردیم اصلا غذای حضرتی دست جمعی میچسبه آجی دو تا قیمه رو هشت نفر خوردیم سیرم شدیم از فراقا این قام که دیدیم زن آقای ساجدی نبود چی شده خانم ساجدی هیچی. نمیدونم چی شد که این رفت آمدا قد شد کمال همش بهانه میگیره به خدا روزی شب نمیشه که حرف شماها نباشه من برای گس از صرافتش بیافته میگم آقای کمال جون کو تو جان کدومشون یه بار در این خونه رو زد میخنده و میگه یه نگاه به زندگی خودمون بنداز ببین چه هد گرفتاری داری اونا مثل ما مگه من رفتم بهشون سر بزنم یه موقع کمالا تو که از رخت خوابت در میمیایی بقیقا نمیتونی از کپسولت جداشی. شیم اکبر آقا یه لحظه تو بیمارستان بند نمیشه میگه مهری شبای ساسان قربتش از جبه بیشتره اگه میدونست شما میای خیلی ذوق میکرد آقای که میاد خونه ما که بر شهید اکبر پا به پای عشقای زن می و صورتش مجددم چشم به تختش میفتم. فکر می کنمم کمالم زنده است. همونطور باهاش حرف میزنم. خیلی از اون کشی مک آقا. خیلی. شده بود پوست واسخ. اونم میشه پوستیم. لا اله الا حاجی آروم و آهستمی ها تا تلفن مغازر رو برداره بله خودم هستم بله از کجا؟ باشه باشه حتما حتما می خدا بزشون نشونی احمد ایروانی پیداش؟ آره یه نسی گوشی؟ گوشی؟ آقای دوتو گفتم متاسفانه که این هفته وقتشون کنه هفته ای چون دارم میرن سفر فقط وقت دادن که برنامه تلویزیونی زرف کنن گفتم گوشی؟ گوشی؟ گوشی نسی این کارتو تو دادن خدمتون مال یه سمیناره تنبته میدونم ممکن مورد استفادت رو نباشه ولی خب آقای دکتر اونجا سخنرانی دارن میتونی امروز سخنرانی تشریف ببریم اینجا بفرمی؟ ما برای نشونی آجی احمد اومدیم اونم تو پاکته درزم دو تو کارت قضم برتون گذاشتم که انشالله موقع نهار بتونین آقای دکتر رو ببینیم بریم آجی. پس برای ما لوقاتم زحمت دکیشون دو دفتر تشک بیاری تو همون سمینار آقای دکتر میتونید بدهی وقتی حاجی از در میره بیرون اکبر دم در نگاه سنگینی به مومشی میندازه و بعد هم پوز خیرد خداوندی خدا این آخرین جایی که دارم باید نیم که خسی شدم تو اون دخمه پشت خیابون نشسته بودن. این خبر از همه جا که بس همه. تو این یه هفته جونم به لبم رسیده دست سرام بردار این قضیه رو حترم میترسم وقتی ایوانیم بگه من از هیچ چیز خبر ندارم و صبح دبله در بیاری بگی نه بریم سراغ یکی دیگه دیگه نمیخوام خفت بکشم توی اون دکون آقای خودمم ناكره خودم با شرخمم کلی صفا میکنم حرمت عزتم سر جاش درخش سر به فلک کشیده و سال تو حیات ساختمانی پر از برگای زرد و خوشده تو راه را روی نیمکتا مریضا گله به گله نشستن و بی حالن. تو اتاقم رو تختا. هم آجی کدوم اتاقه؟ مردی که با واکر را میره با دست اشاره به اتاقی میکنه آجامت کدومه؟ مردی از اتاق میاد بیرون که بدون گفتی با دست اشاره میکنه که دنبالش برن مرد اونا رو به اتاق راه رو میبره. آجامت نهمون داری مردی روی ویلچر نشسته و به هیچ حرکتی رو به پنجره زل زده به ناکجا آجامت دیگه مش تکیشه صداش در ها نمیاد حاجی احمد فقط دستشو اونم یکم کم میده دیگه نه رنگی به رو داره و نه مویی به سر و صورت آشی اکبر میشینه و دست حاجی احمدو میبوسه و پیشونیش رو دست اون میذاره حاجی احمد با اون صورت رنجور و بیرنگ لبخند کم رنگی میزنه چه وجیری شده تیبی دنبالت نمیتونه بیشتر از چند ثانیه تو چشای اون نگاه کنه حاج ابراهیمی دست روشونه حاج احمد میگذره با این دعیه یعیه ابراهیمی حالا دیگه حاج احمد قلبش تون تر ما خیلی وقت داریم دنبالش رو بکردیم فقط شما ما میتونید ما رو خلاص کنید انشالله تو زاد شما دروب نیست شما فرمونده بودین هرچی شنیدی و دیدی محضر رضای خدا به من بکن اکبر حرفش اینی که یه ای منو کشته به خدا قاطی دارم میکنم حاجی ابراهیمی دستشو به میله تخت میگیره و آرومش به سرازیر میشن با بخرا باید بدونم با هیچگرم چی شده قد یک کلمه آره اینجا نه وقت پدر برزیده یه چیزی بگو تو فقط میگاه بکنی اینم تبه شرعجی نیست تو هم که زبور واضع نمی کنی من بدبخت از کجا بفهمم که چه بلایی سر پسرم آمده ایچ <تصفيق> <تصفيق> جواب من نمیده؟ اکبر چشاش شروع به چرخیدن میکنن انگار داره یه چیزایی یادش میاد هاج احمد هم چشاش یه جا خیره مونده و تو فکره شب بود نه زدین باب تو همون جلو بودی نه تو دل شب وسط رود دست ساغاها اینه کنار میزنه رزمنده ها اصله رو گرفتن و دوششون آروم از بود میکسرن جلدارشون ها جحمده هم بین اوناست و اصلاحشون بالا گرفته ها به چند نفر اشاره می که از سمت خلاف اون برن منور که میزنن یهی سرشو میدسته چه حالا حالا دستشو دراز میکنه و دست می اکبر رو میگیره اکبر میگران خیرونه <تصفح> هر دو سر میگردنن و مراقبن سقاهای نیو پس میزنن و آروم رو آبشنابرن به محصه شروع همه با هم میرن زیر آب بعد از نام شدن و سرش آروم از زیر آب در میره یکو یهیو به شتاب میاد بالا اون درد داره دستش رو گردنشه و دندوناشو رو هم فشار میده از از دستش میفته و میره زیر آب اکبر میره سمت یهیو که کمکش کنه یهیو نفسش بندونه راینا شما حاج احمد آروم اومد اکبر و یهیو میرن زیبه چه خبرتونه حاجی شده دوباره احمد مشکاتی رو میفرسته که بره میچرخونه به اطراف که ببینیم میشه پناهگاه پیدا کنه تو این تاریکی آروم آروم یهیو رو میبره سمتی یهیو درد میکشه به سختی نفس میکشه اکبر دستشو میگیر به دهن یهیو رگبار گلوله ها روی آب و درست جلوی اکبر و یهیو شروع میشه اکبر یهیو رو به زور میبره زیر آب نسله یهی ته آب یهی یا به سختی نفس میکشه حاج احمد آرون میاد سمتشون پشت سرشم هم مشکاتی که رگبار شروع میشه همه میرن زیره همه میرن زیره همچنان از جایی گلوله تو گردن یهی داره خون میزنه جمال. سنه ایزا خواهی درمه شاید ساکتش بان تو رو خودای کاری بکن اکبر نبینی تو چه وضیعتیستی زی؟ ساکتش بان آخه چجوری یا کشتر میده سود باش ساکتش بان ها جهما سرش رو میبره زیراب اکبرم یحیا رو میبره زیراب و سعی میکنه نگهش داره یحیا تعمالش تاخ شده نمیتونه بیشتر از این زیراب بمونه از دست اکبر ره ها میشه میاد بالا اکبل جلوی دهن یه رو میگیره آج احمد بین سامده شد شکار داری شما هر خبر میکنه چی یه نفر شیخ حاج احمد صورت یعیا رو تو دستاش میگیره دستای حاج احمد از جای گلوله پر از خون میشه. حاج احمد مبهوت دست پرخونش رو نگاه میکنه و زل می‌زنه به عقب. عبدالله مشغاتی هم از اون دور شاهد ماجرمز یای موزه هاج با چشای پر عشق سر یحیارو میگیر و پیشونیشو میگذر خودمارو ترمی برزاد خودمارو ترمی برزاد حاج احمد میره و یهیه و اکبر سرگردون میمونن وسط آب چی؟ یهیه چشاش باز نمیشن حاجیتی رو خودمارو کومنگو کار حاجیتی رو خودمارو کومنگو کار دستش طور گردن اکبره و یه تحخن بوشه یحی تر شده صورتش رو میزاره روشونه اکبر و رو با هم میرن زیر آب اکبر اش میریزه و یحی رو زیر آب نگه میداره یحی چشاش بسته است و آرومه اکبر تا دست روی جای گلوله گردن یحیی میزاره خون فوران میکنه یا درد نمی کشه دیگه چشماش باز نیستند دیگه حبابی از ذهنش بیرون نمیاد اکبر یا اکبر تو آغوش میگیرم زار یهو یا یا آروم از آغوش اکبر جدا میشه آروم با دستای باز و فارغ از درد یا یا بنس غای نهی بدرقه میشه اونا به آرامش خودش نوازشش میکنن. اونا از زیهی دل نمیکنن. به خاطر همینم نمیذارن بره رویا. هر چقدر دست و پا میزنه یهی از اون دورتر میشه. یک لحظه اشک اکبر بند نمیاد. یهی که نرسو آوی پهنه نمیخوام. به شیشه اتاق ها جمعده و همچنان چشاش تا ها جمعد. که به سختی نفس میکشه و اون زل زده و اشکاش صورتش <هایا. عصدق> رو پوشوندن آج ابراهیمی دستش شونه ها جمعد میثره و همینطور که دستشو گرفته رو لباش که صدای حق حقق شد کسی و از اتاق میره بیرون. اکبر. چند قدمی دنبالش میره اما کنار صندلی ها پا بند میکنه اکبر بر میگرده سم حاجی ابراهیمی با سرعت بیشتری بیرقه را آماده میکنه کین کیم کشته فتاد به هامون حسین توست حاجی مشکی پوش مثل همیشه سر به زیر و صبور فقط میدوزه یا به قول خودش سرش به کار خودش گرمه و الله السلام و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. بالاخره اکبر تونست نمازشو کامل بخونه. اکبر. اکبر منافی. اینکه که تونستی نمازتو کامل بخونی حساب نیست؟ راضیت نمیکنه. پس این نگرانیو و دیگه برای چیه؟ خواب راحت؟ هنوز کلی راه مونده تا راحتی خواب بیدارشو هنوز خیلی کار که میتونی تو پای اولش باشی تو آخرین لحظات نفس کشیدن یا یا ذره همین آجی تو تنها کسی بودی که تو آغوش گرفتیش که نفساشو شمردی که کنارش بودی حالا هم تو از همه به آجین هست دیکتری بس بسم الله یاران و همراهان همیشگی این لحظات یگانه ارزش ثبت چندین و چند هزار باره رو تو حافظه تاریخی و هنری این سرزمین داره امیدواریم که به یاری خدا بتونیم بارها و بارها این های رشادت و پاکی و خلوص رو برای شما شیواتر و ماندگارتر به تصویر خیال بکشیم من ملیح شبانیان راوی و نویسنده به همراه علی حاجی نوروزی صدا بردار و فرشاد آزرنیا سردبیر و تهیه کننده خوشحالیم که باز هم سعادتی بود و ما در کنارتون دقایقی رو به نیکدلی فرزندان مخلص این سرزمین بودیم و تونستیم یاد و نام و خاطره این عزیزان رو گرامی بداریم تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده Oh <laughs>